نونزده زندگیتان را متعادل نگه دارید علت اینکه کار می کنید اینه که به اندازه کافی پول درارید تا از خونوادتون، سلامتیتون و بخشهای مهم زندگی شخصیتون لذت ببرید میخواید با همسر و فرزندانتون روابط شاد، سالم و با آرامش داشته باشید میخواید سالم و تندرست باشید میخواید رشد ذهنی و معنوی داشته باشید میخواید در کار و شغلتون تا حد امکان موفق بشید تا برای همه چیزهایی که دوست دارید و ربطی به کارتون نداره منابع کافی داشته باشید. متاسفانه اکثر اشخاص کالسکر رو قبل از گرفتن اسب میخرن. اونقدر مشغول کارشون میشن که اصلا یادشون میره از اول برای چی میخواستن در کارشون به موفقیت برسن. قطعا شما قرار نیست اینطور باشید. یادتون باشه که در زندگی روابط همه چیزه. حداقل 85 درصد موفقیتتون در زندگی از روابط خوبتون با دیگران میاد. فقط پونزده درصد خوشبختیتون از موفقیتهای کاریتون میاد. باید زندگیتون رو متعادل نگه دارید. در برنامه پیشرفته مربیگری که در سندیگو دارم، با مدیران و افراد فوقالعاده موفق کار می‌کنید تا به اونا نشون بدیم که چطور پس از مدتی زندگیشون رو به نحو چشمگیری ساده کنن، ساعت کاریشون رو کاهش بدن، وقت بیشتری با خانواده‌هاشون بگذرونن و درآمدشون رو دو برابر و همه این کارها رو با هم انجام بدن. بیشتر افراد ها وقتی که شروع به استفاده از این روش ها می کنن، باور ندارن چنین کاری ممکن باشه. مثلا در یکی از برنامه هامون مدیری بود که هفته 60 تا هفتاد ساعت کار می کرد و سالی حدوددا پنجاه و پنج هزار دلار درآمد داشت. بعد از اینکه شروع به ساده سازی و متعادل کردن زندگیش کرد تا یه مدت 5 سال درامدش به بیشتر از 300 هزار دلار در سال رسید و ساعت کاریش تا 38 ساعت در هفته پایین اومد. شما هم میتونید همین کار رو با زندگیتون بکنید. کلیت های تعادل تعدل ساده اند. آرامش خاطر، خوشبختی و زندگی خانوادگیتون رو بزرگترین هدفاتون بگذارید و بقیه زندگیتون رو حول اونها تنظیم کنید. مقاطع زمانی برای بودن با خانوادتون بگذارید. شبها وقت بگذارید، آخر هفته ها وقت بگذارید و در تعطیلات برای مسافرت وقت بگذارید. فرمول تعادل رو یادتون باشه. که میگه در خانه کمیت زمانی که صرف میکنید اهمیت داره و در کار کیفیت زمانی که صرف میکنید اونا رو با هم اشتباه نگیرید ساده ترین قانون تعادل اینه که افراد رو در اولویت بگذارید از بین همه افرادی که در اولویت میگذارید مهمترین افراد زندگیتون رو جلوتر از هر چیز و هر کس دیگه قرار بدید وقتی کار میکنید تمام زمانی که سر کار هستید رو مشغول کار باشید با بیهوده گپ زدن و فعالیت های بی وقتتون رو تلف نکنید. تمام وقت مشغول کار باشید. یادتون باشه که هر دقیقه از کارتون رو که با بیهوده گپ زدن هدر میدید، ای است که از خانواده و روابط مهمتون دریغ می‌کنید. وقتی زندگیتون رو متعادل کنید، عملاً بیشتر به نتیجه می‌رسید. بیشتر پول می‌گیرید، بیشتر کارایی دارید و وقت بیشتری برای گذراندن با خانوادهتون دارید. اصلا دلیل اینکه می‌خواید کاراییتون رو بیشتر کنید همین بوده